دوستان، اینو تجسم کنین. کانال محبت خدا شدن. این به نظرتون خوب میاد. اما چطور یه نفر میتونه خودش رو با خدا پدر آسمانی ما هماهنگ کنه که کانال محبت اون باشه؟ و معنی اون واقعا چیه؟ عزیزان به کلاس دیگه ای از دانشکده کچک کتاب مقدس خوش اومدین. خوشحالیم که دوباره به ما ملحق شدین تا تعالیم خداوند ایسای مسیح در بالای کو رو با ما مطالعه کنیم. امروز معلممون به ما کمک میکنه که بفهمیم معنی کانالی برای محبت خدا شدن چیه حالا بیاید با هم به معلممون گوش کنیم خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است خوشا به حال ماتمیان زیرا ایشان تسلی خواهند یافت خوشا حال حلیمان زیرا ایشان وارث زمین خواهند شد خوشابهال گرسنگان و تشنگان ادالت زیرا ایشان سیر خواهند شد، حال رحم کنندگان زیرا بر ایشان رحم کرده خواهد شد. ما امروز در مورد خوشابهالی صحبت خواهیم کرد که میگه حال رحم کنندگان. کلمه رحم کننده به معنی کسی هست که بی قید و شرط محبت میکنه. رحمت یعنی چی؟ رحمت یعنی محبت بی بیقید و شرط. وقتی در مورد رحمت خدا صحبت می کنیم، در مورد محبت بی بیقید و شرط خدا صحبت می کنیم. فیض یکی از خصوصیات خداست که به واسطه اون خدا انواع چیزهای ای رو به ما میده که شایسته اونها نیستیم. فیض یکی از زیباترین کلمات در کتاب مقدس هست. اما اینجا کلمه زیبای دیگری هم هست کلمه زیباتر از کلمه فیض و اون کلمه رحمته رحمت چی هست؟ رحمت چیزی هست که ما شایستهش هستیم اما خدا از ما دریغ میکنه وقتی زمان داوری برسه آیا کسی هست که بتونه در مقابل خدا بیسته و بگه من آنچرا که حقمه میخوام نه بیشتر نه کمتر من حقم رو میخوام هرچی که شایستهش هستم به من بده من که یقینا این حرف رو نخواهم زد وقتی در مقابل خدا بیستم به او خواهم گفت رحمت و فیض. من به رحمت و فیض تو نیازمندم وقتی این کلمه رحمت رو مطالعه کنید، متوجه میشید که این کلمه حتی زیباتر از کلمه فیضه. چون بر اساس کتاب مقدس ما سزاوار چی هستیم؟ دوباره کتاب رومیان رو بخونید و استطلال الهیاتی پولس رو در این کتاب ببینید. فکر میکنم خواهید دید یکی از مباحث پذیرفته شده او، یکی از اساسی ترین نقط نظرهای او که بسیاری از تعالیمش رو درباره نجات بر اساس اون ارائه کرده در کتاب رومیان هست که میگه ما نیک نیستیم. ما گناهکاریم. او در هاش میگه تبعاً اگر به حال خودمون رها بشیم گناه میکنیم. ما فرزندان قذب هستیم. وقتی با این الهیات آشنا میشید، متوجه میشید. به این دلیل ما باید ناجی داشته باشیم. به این دلیل خدا مجبور شد پسرش رو به جهان بفرسته چون ما نیک نیستیم. تنها چیزی که ما سزاوارش هستیم به به گفته ی کتاب مقدس جهنم هست. هر چیزی که در این سوی جهنم دارید به خاطر فیض و رحمت خداست. پس وقتی پنجمین خوشا میگه خوشا رحم کنندگان چون بر آنان رحم خواهد شد چیزی که در واقع او ازش صحبت میکنه محبت بیقید و شرط خدا هست برای دیدن ارتباط این حال با بقیه دکتر مارتین لوید جونز که یکی از محبوب ترین محققین کتاب مقدس برای من هست کتاب ای نوشته تحت عنوان موعزه بالای کوه من خوندن این کتاب رو به شما توصیه میکنم کنم که تماما مربوط به این سباب انجیل متا هست شما باید با صبوری این کتاب رو بخونید و اگر تمامی این تفسیر را به دقت مطالعه کنید وقتی اون را تموم کنید موعزه سر کوه را تماما درک خواهید کرد. دکتر جونز در تفسیر خودش از موعزه بالای کوه می گوید که خوشابهال ها را می توان به عنوان نردبان تلقی کرد. چهارتای اول ما را به بالای کوه می رسوند. خوشابهال فقیران در روح ما را رو به یک چهارم مسیر بالای کوه می رسوند. ما را به نیمه راه میرسونه و خوشاب حال نرم خویان ما را به سه چهار راه میرسونه و خوشاب حال گرسنگان و تشنگان عدالت ما را به بالای کوه میرسونه. سپس خوشاب های دیگه ما را به پایین کوه برمیگردونند. وقتی کسی بالای کوه با خدا بوده و با عدالت او پر شده، وقتی به پایین کوه میرسه رسه چجور آدمی شده؟ آیا او متخصص کتاب مقدس شده؟ آیا او شخصی نظریه پرداز هست؟ آیا شخصی متاسبه؟ آیا او یک فریسیه؟ آیا او یک کاتبه؟ آیا او کسی که از کوه بر میگرده و میگه برادران من شما رو در کتاب مقدس شکست میدم شما هر چقدر بدونید من بیشتر از شما میدونم هر بحثی بخواهید بکنید من برنده اون بحث هستم آیا او چنین شخصی میشه؟ نه وقتی کسی بالای کوه بوده و با نتایج خوشابهال ها از ادالت پر شده شما میتونید بگید او پر از خداست وقتی او از کوه پایین میاد چه شکلیه او شخص مهربانیه پر از محبت بی قید و شرط خداست پر از فیض و رحمت خداوند برای انسانها هست او چنین شخصی میشه حیرت انگیزه که بدونید کلمه رحمت 365 بار در کتاب مقدس ذکر شده من فکر میکنم به این دلیل که خدا میدونست که ما در هر روز از 365 روز سال به اون نیازمندی. اکثرا به رحمت خدا در عهد قدیم اشاره شده. خدا همیشه خدای محبت بی قید و شرط بوده. سرودی هست که میگه عظیم است وفاداری تو. اون سرود بر اساس آیاتی از باب سه مراسی ارمیا نوشته شده. ارمیا درست قبل از اینکه قوم خدا به اسارت بابل برده بشن، نبوت کرده. اونها به اسارت برده شده بودن نیمی از اونها قتل عام شده بودن به دختران و زنان جوان تجاوز شده بود مردم رو قول و زنجیر کرده بودن اما ارمیا مجبور نبوده که بره دشمن با او مهربان بوده او در سرزمین مقدس میمونه و همه ی قوم برده میشه او رفت که در قار کوچکی زندگی کنه به اون قار ارمیا گفته میشه ارمیا در قار مینشست. و برای قوم خدا به خاطر اتفاقی که افتاده بود مرسی سرایی میکرد. به ارمیا نبی گریان میگفتن. نبوتهای او در کتاب ارمیا به عنوان گریه های او توصیف شده. به این دلیلی که خلاصه کردن او سخته. چون او به صورت خلاصه گریه نمیکرد. قلب او شکسته. او در سر تا سر کتاب گریه میکنه. وقتی به انتهای این کتاب میرسید به این زمیمه ای ارمیا میرسید که به کتاب مراسی ارمیا معروف است. معنی این چیه؟ معنیش هقهق بیشتر و گریه بیشتر هست. ارمیا به خاطر اسارت و مصیبتهای ناشی از اون گریه می‌کنه. اما در سومین باب از هاش در مراسی او مکارفه ای داشت. او میگه به خاطر چیزی که خدا بر او آشکار کرده او امیدواره و می‌دونید خدا در اون غار بالای کوه به او چی نشون داد؟ خدا به او گفت ارمیا هرگز محبت به تو رو متوقف نکردم بعد از اون ارمیا الهام گرفت برکت یافت و گفت تو البته به یاد خواهی آورد زیرا که جان من در من منحنی شده است و من آن را در دل خود خواهم گذرانید و از این سبب امیدوار خواهم بود از رعفتهای خداوند است که تلف نشدیم زیرا که رحمتهای او بیزوال است آنها هر صبح تازه می شود و امانت تو بسیار است هرگز از محبت به ما دست بر نمی دارد گفته شده در همون جایی که غار ارمیا بوده صدها سال بعد درست در همون محل بر بالای همون کوه خداوندمان عیسی مسیح مصلوب شد اون تپه به تپه جمجمه یا جلجتا معروف است که در زبان لاتین به اون صلیبگاه میگویند در همون نقطه که خدا رو مطمئن کرد که هرگز از محبت به او دست بر نمی داره، خدا این بار محبت بی قید و شرط خودش رو نه تنها فقط به قوم یهود بلکه بر تمام جهان فروریخت. اون رحمت خدا بود وقتی کسی به خاطر اینکه گرسنه و تشنه ادالت بوده بالای کوه قرار میگیره و خدا او رو با ادالت پر میکنه او پر از محبت بی قید و شرط خدا میشه چون عدالت محبت هست. محبت ادالته و ادالت محبت. خدا عادله خدا محبته. همه اینها به همراه هم هستند. پس وقتی کسی از کوه پایین میاد و تجربه راه رفتن با خدا رو شروع میکنه، یکی از اولین خوشابهال های او در این راه این هست. خوشابهال رحم کنندگان زیرا برانها رحم خواهد شد. وعده برانها رحم خواهد شد در اینجا بعضی از مردم تصور می کنند معنیش اینه که مردم به اونها رحم خواهند کرد اما من فکر می کنم معنی اون بزرگتر از این چیز هاست من فکر می کنم معنیش این هست که اونها تبدیل به کانال های محبت بی غید و شرط خدا برای کسانی خواهند شد که به این محبت نیاز دارند بسیاری از مردم به طور مشروط محبت می کنند محبت اونها نسبت به کسی بر مبنای عمل کرد اونها تو این کار رو بکن، اون کار رو بکن و فلان کار رو بکن بعد از اون شاید من تو رو محبت کنم. بسیاری از زنان احساس می کنند که شوهرانشون اونها رو رو گونه محبت می کنند. بسیاری از شوهران احساس می کنند که زنانشون اونها اینطور محبت میکنن. وقتی احساس کنید کسی شما رو بر مبنای کردتون دوست داره باید اون رابطه رو بیمه کنید. چون حتی اگر، امروز قادر باشیم عمل کرده خوبی داشته باشیم از کجا می دونیم که آیا فردا هم قادر خواهیم بود؟ آیا فردا هم خواهیم توانست عمل کرده درستی داشته باشیم یا نه؟ اگه مردی احساس کنه که به خاطر تأمین معاش خانواده دوستش دارن اگر شغلش را از دست بده چی کار می کنه؟ اگه یه زن احساس کنه که به خاطر این که شریک جنسی خوبی هست آیا امکان نداره که فکر کنه اگر حامله بشم و نتونم روابط زناشویی رو به جا بیارم چیکار باید بکنم؟ یا وقتی پیر بشم و جذابیتم رو از دست بدم آیا او باز هم منو دوست خواهد داشت؟ جواب در یک میلیون مورد نه هست وقتی مرد دیگه نتونه معاش خانواده رو تأمین کنه یا زن وقتی نتونه روابط زناشویی رو به جا بیاره دیگه اونها رو دوست نخواهند داشت بنابراین دنیا مشکل وحشتناکی داره. چون مردم میدونن که محبوبیتشون مشروط به کارایی اونها هست. نمیدونم آیا تا حالا اینو درک کردید که خدا محبت هست؟ یوحنا این رو فهمیده بود او در اول یوهنا چهارشونزه اینو به ما میگه او میگه ما از محبت خدا نسبت به خود آگاهیم و به آن اطمینان داریم. خدا محبت هست و هر که با محبت زندگی می کند، در خدا ساکن است و خدا در او سالها پیش قبل از اینکه که کارم رو به عنوان شبان شروع کنم چندین سال کار اجتماعی می کردم اون موقع دنبال رابطه با خدا بودم الهیات و کتاب مقدس رو به خوبی می دونستم چون که کار من تعلیم دادن به دانشجویان برای پرورش خادم بود اما می خواستم خدا رو در یک رابطه بشناسم من آیاتی مثل ابرانیان 11-16 رو پیدا کردم که می گفت و بدون ایمان محال است که انسان خدا را خشنود سازد زیرا هر کس به سوی خدا می آید باید ایمان داشته باشد که او هست و به جویندگان خود پاداش می دهد. من به خدا می گفتم من ایمان دارم که تو هستی. اما چی هستی و کجا هستی نمیدونم. من میخوام تو را بشناسم تا اینکه این آیه رو در اول یوحنا چهارشونده پیدا کردم که می گفت من محبت هستم. پس اگر در من و در این محبتی که من هستم ساکن شوی من در تو ساکن خواهم شد و تو منو در این رابطه خواهی شناخت با کار اجتماعی که داشتم این فرصت رو داشتم که این رو ثابت کنم وقتی برای انجام خدمات اجتماعی بیرون میرفتم دعا میکردم و میگفتم پدر تو میگی که محبتی و من گمون میکنم تو در جایی هستی که مردم به محبت نیاز دارن پس من بیرون نزد اونها میرم و خودم رو بین تو و مردم رنج دیده قرار میدم من خیلی از اونها رو میشناختم و دوست دارم که تو این محبت رو که گفتی خودت هستی به من انتقال بدی و به وسیله من اون رو در زندگی کسانی که احساس درد میکنند به کار ببرید من به طور راهبردی بین این محبت یعنی خود تو و این مردم رنج دیده قرار گرفتم این محبت رو که خودت هستی به وسیله من به اونها انتقال بده وقتی خدا اینو به من ثابت کرد نمیتونم بهتون بگم چه تجربیات حیرت انگیزی به عنوان یک مددکار اجتماعی داشتم کسانی بودند که شدیدا نیازمند محبت بودند کسانی بودند که شرایط قمنگیزی داشتند شرایط قمنگیزی که قابل وصف نیست وقتی خدا اون محبتی رو که خودش هست به وسیله من به اونها انتقال داد نه تنها اینو تجربه کردم که محبت او به وسیله من انتقال داده میشه بلکه من در خدا و خدا در من ساکن شد و من احساس کردم که با خدا در رابطه هستم و او عملا به وسیله من با دردمندان تماس میگیره. باز همین همون زمینه ای هست که تعالیم عیسی در سر کوه در اون داده شده بود. انبوه جمعیت با مشکلات فراوان در پایین کوه بودند و عیسی داشت این تعالیم رو که به اونها خوشا حال ها میگیم به شاگردانش میداد چون میخواست اونها بخشی از راه حل و بخشی از پاسخ او و نمک روی زمین و نور جهان برای انبوه این مردم باشه ببینید این چیزی بود که او به اونها در پنجمین خوشا حال میگفت چیزی که من در واقع نیاز دارم اینه که کسی مجرای محبت بی غید و شرط من به این مردمی باشه که شدیدا به اون نیاز دارن آیا شما مجرای محبت بی قید و شرط من خواهید بود؟ آیا مایلید پایین کوه برید و بین انبوه جمعیت با تمام نیازهاشون با تمام مشکلاتشون و با تمام دردهاشون قدم بزنید؟ آیا مایلید یک چنین دعایی بکنید؟ پدر اجازه بده اون محبتی که تو هستی تمام اون محبتی که تو هستی به من انتقال پیدا کنه و توسط من به سوی دردمندان و کسانی که به اون نیاز دارن جاری بشه؟ این چالشی بود که او در پنجمین خوشابه حال پیش روی شاگردان گذاشت و من ایمان دارم که این چالشی هست که او میخواد در مقابل من و تو در هر روز زندگی قرار بده. اگر ما مجبور نبودیم برای امرار معاش بیرون بریم بسیاری از ما احتمالاً حتی بیرون نمیرفتیم که در بین مردم دنیا زندگی کنیم. اما در برنامه او این هست که ما زندگی بسازیم هدف واقعی از شغلی که ما داریم که ما رو به میان مردم گمشده میبره میتونه تقدیر خدا باشه که سعی میکنه ما بیرون بریم و کانال محبت او باشیم حالا میخوایم بریم سراغ ششمین حال. اون هم با پنجمی جفت هستند کسی که بالای کوه میره و با عیسی وقت صرف میکنه چه جور انسانیه وقتی او میره کم کم شما ممکنه بگید فقیر بودن در روح یک چهارم راه او رو بالا برده ماتم گرفتن او رو تا نیمه راه برده حلیم بودن او رو تا سه چهارم بالای کوه برده و بعد گرسنگی و تشنگی برای ادالت او رو تا بالای کوه رسونده که در اونجا پر از ادالت شده وقتی کسی بالای کوه بوده و در اونجا پر از ادالت شده تبدیل به چه انسانی میشه ما در درس قبلی دیدیم که او کسیه که رحم میکنه اون کلمه رحم به معنی محبت بی بیقید و شرط هست. او پر از ادالت هست، اما معنیش این نیست که او یک فریسی و کاتب پیر و یک رهبر مذهبیه. آیات کتاب مقدس را از حفظ میخونه، برای مردم احکام شریعتی صادر میکنه، او اینطوری از بالای کوه پایین نمیاد. او بالای کوه بوده، از راستی پر شده و دلیلش اینه که وقتی از کوه پایین میاد، پر از محبت بی قید و شرطه خداست محبت بی قید و شرط مسیح برای مردمیه که گرسنه محبت بی قید و شرط هستند هر بار که کسی به شما محبت میکنه یکی از مهمترین چیزهایی که شما بهش فکر میکنید انگیزه اون شخص برای محبت به شماست اگر کسی به شما محبت بی قید و شرط نشون بده آیا خود به خود توی دلتون نمیپرسید که انگیزه او از محبت به من چیه اگر کسی پول زیادی به شما بده آیا اولین واکنش شما این نخواهد بود که چرا به من پول میدی؟ همه ما این کارو میکنیم. ما مرتبا انگیزه دیگران رو امتحان میکنیم. به این دلیل که پنجمین و ششمین خوشا حالها با هم جفت هستند. خوشا حال رحم کنندگان، کسانی که پر از محبت بی قید و شرط خدا هستند. اما در حالی که اونها این محبت بی قید و شرط خدا رو نشون میدادند، این نکته به همراه اون میاد. خوش به حال پاک دلان. زیرا ایشان خدا رو خواهندی. عملاً معنی پاکدل چیه؟ ما به صورت ظاهری میتونیم بگیم معنیش اینه که اونها با این محبت بیقید و شرط خدا محبت میکنند. کنند. انگیزه قلبی اونها برای این محبت بیقید و شرط پاکه. واقعیت اینه که محبت بیقید و شرط اونها باید به ما اینو نشون بده که اونها به خاطر عمل کرده مردم اونها رو دوست ندارن. اونها رو بدون در نظر گرفتن عمل کردشون دوست داره یادتونه که کلمات فیض و رحمت رو مقایسه کردیم فیض چیزی هست که خدا انواع چیزهایی رو که ما شایستهش نیستیم به ما میده رحمت اینه که چیزهایی رو که ما شایستهش هستیم از ما دریق میکنه فیض و رحمت مانند شمشیر دودمی هست که یک لبه اون شمشیر میگه تو با عمل کرد مثبت خودت فیض محبت بیقید و شرط رو به دست نیاوردی. اما لبه دیگر میگه تو نمیتونی لطف و برکات و محبت خدا رو به خاطر عمل منفی از دست بدی. خدا به هر حال تو رو دوست داره. حالا اگر شما با محبت خدا کسی رو محبت کنی؟ اگر شما مجرای محبت خدا هستی؟ اگر شما کانالی برای محبت خدا هستید؟ اون موقع باید بتونید به شخصی که محبتش میکنید بگید محبت من نسبت به تو هیچ بهایی نداره مهم نیست که تو چیکار میکنی من تو رو با محبت خدا محبت میکنم و محبت خدا قویه اون قوی تر از هر چیزیه که تو میتونی انجام بدی محبت من که محبت خداست موقتی نیست اون تمام شدنی نیست به هر حال تو رو دوست دارم تو نمیتونی کاری بکنی یا چیزی بگی که باعث بشه من از محبت به تو دست بکشم چون من تو رو با محبت مسیح محبت می کنم با محبت خدا اگر این طور هست پس بی چون و چرا انگیزه شما برای محبت بیقید و شرط به این شخص باید پاک باشه اما وقتی به این کلمه پاک دل در زبان اصلی نگاه میکنید اون واقعا پاک به معنی تمیز و نظیف نیست از یک نظر این حقیقته اما بذاری توضیح بدم کلمه یونانی برای پاکیل در اینجا کلمه کاتاریس هست. چیزی که اون به ما نشون میده چیزی مثل اینه. وقتی شما بیمارستان میرید و به شما سند زده میشه این زمانی هست که شما نمیتونید به صورت طبیعی مراحل دفع ادرار رو انجام بدید و به شما سند زده میشه. چون اگر راهی برای دفع ادرار از بدنتون نباشه تمام بدنتون پر میشه از سم اوره پس باید به شما سند زده بشه تا ادرار و سم اوره از بدنتون خارج بشه روانشناسان اصطلاحی دارن که خیلی شبیه کاتاریس یا کاتاتر هست اصطلاح اونها کاتاریزیس هست وقتی کسی کاتاریزیس احساسی داره شاید اونها کنترلشون را از دست بدن و انواع های انباشته در ذهنشون رو آزاد کنن و شاید از نظر احساسی به جایی برسن که درهم هم بشکنن و شروع به گریه بکنن گاهی حتی میتونه به شکل خنده دیده بشه شاید اونها مدت‌ها اخمو بودند و چیزی باعث خنده اونها میشه و اونها نمیتونن خندهشون رو متوقف کنن. اونها همزمان هم گریه میکنن و هم میخندن. روانشناسان به این کاتارزیس میگن. اونا میگن به این وسیله شما اجازه میدید سموم ذهن شما بیرون بیاد و ذهن خودتون رو پاک میکنید. جالبه که کلمه ای که در اینجا برای خوشا بهحال پاک دلان به کار رفته همون کلمه هست. چیزی که اون داره میگه اینه. از خدا از روح القدس بخواهید که به لحاظ روحانی قلب شما رو سند بزنه. پاک بکنه و هر چیزی رو که نباید اونجا باشه بیرون بیاره. هر چیزی که مخالف خاسته خدا برای قلب شماست. کتاب مقدس چیزهای زیادی در مورد قلب گفته. در امثال سلیمان میگه دل خود را به حفظ تمام نگاه دار زیرا که مخرجهای حیات از آن است. به ما گفته شده سرچشمه های حیات از قلب انسان بیرون میاد. پس با همت و پوشکار مراقب قلب خودت باش اون جایی که همه چیز از اونجا میاد تمامی اعمال شما در واقع نتیجه اون چیزیه که در قلب شما هست به این دلیلی که داوود اون دعای بزرگ رو در پایان مزمور 139 آورده بعد از اینکه به خدایی که او رو میشناسه اشاره میکنه بعد از اینکه به خدایی که او رو خلق کرده خدایی که او رو طراحی کرده خدایی که به او فکر میکنه اشاره میکنه، این دعای عظیم رو در آخر مزمور میکنه. ای خدا، مرا تفتیش کن و دل مرا بشناس. مرا بیازما و فکرهای مرا بدان و ببین که آیا در من راه فساد است و مرا به طریق جاودانی هدایت فرما. داود مرد حکیمی بود و خدا رو مخاطب قرار میده کسی که میدونه در قلب او چی هست. او گفته خدایا من قلب خودم را نمیشناسم اما تو میشناسی. حالا قلب منو بررسی کن و بر من آشکار کن که در اونجا چی میبینی که نباید باشه. چون من میخوام در راه های جاودانی گام بردارم. ارمیا هم نظر بزرگی در مورد قلب داشت. او در ارمیا 17 نه گفته دل از همه چیز فریبنده تر است و بسیار مریض است کیست که آن را بداند. بعد او به سوال خودش پاسخ داده و گفته فقط خدا میتواند دل انسان را بشناسد. قلب شما به شدت شریر است و بیش از هر چیزی فریبنده است. به این دلیلی که مردم هزاران دلار به روانکاوان پول پردازند چون قلب اونها فریبنده است. اونها هم خودشون و هم دیگران رو فریب میدن. وقتی سالها پیش به کالج رفتم هم در کتاب مقدس و هم روانشناسی فارق رو تحصیل شدم. وقتی کالج رو تموم کردم، در مورد همه چی فکری تازه داشتم. چیزی رو که در روانشناسی یاد نگرفتم، در کتاب مقدس یاد گرفتم و بی صبرانه منتظر بودم که به مردم مشورت بدم. تنها کاری که اونها باید می این بود که من و ملاقات کنن و من می تونستم همه ی مشکلاتشون رو حل کنم. اما بعد به نظر می رسید که هر کسی رو که ملاقات می کنم یک استثناء از چیزی بود که من یاد گرفته بودم وقتی که حدود هزار استثناء رو ملاقات کرده بودم روزی به خدا گفتم خدایا من چیزی در مورد مردم و قلب اونها نمیدونم و بعد در زمان راز و نیازم بود که اون آیه از ارمیا رو پیدا کردم اون آیه رو میدونستم که میگفت قلبهای ما به شدت مریضه و از هر چیزی فریبنده تره اما این قسمت رو فراموش کرده بودم که میگفت چه کسی میتواند قلب انسان را بداند؟ من مجبور نبودم منتظر جواب بمونم. جواب این بود که فقط خدا میدونه در قلب انسان چی هست. در یعقوب باب چهار او عوامری میده و چیزهایی مثل این میگه. پس خدا را اطاعت نمایید و با ابلیس مقاومت کنید تا از شما بگریزد و به خدا تقرب جویید تا به شما نزدیکی نماید. و بعد گفته دستهای خود را تاهر سازید. ای گناهکاران! و دلهای خود را پاک کنید. ای دو دلان! انسان دو دل او در باب یک یعقوب گفته در راه های خود ناپایدار هست. پس بهتره که شما قلبهای خودتون رو از نظر انجام کارهای درست پاک کنید. ایسا در متاشش میگه چشم چراغ بدن هست. یعنی طرز نگرش شما به چیزها طرز فکر و دیدگاه شماست. اگر چشم تو پاک باشد تمام وجودت نیز پاک و روشن خواهد بود اما اگر دو بینی روحانی داشته باشی اگر شیزوفرنی روحانی داشته باشی اگر چیزها رو دو جور ببینی باور کنی اما شک کنی اعتماد کنی اما نگران بشی خب یعقوب میگه که وقتی دعا میکنید اینطوری دو دل نباشید خدا به اینجور دعا پاسخ نخواهد داد شما باید با ایمان دعا کنید نمیتونید در دعا دو دل باشید. این مفهوم پاکی قلب هست. این برخلاف شک و دو دلی و تردید هست. این اشاره به لوت در کتاب مقدس هست. در مکاشفه مسیح قیام کرده به کلیساهای قرن اول میگوید من تو را خوب میشناسم. میدانم که نه سر هستی و نه گرم. کاش یکی از این دو بودی. اما چون نه سر هستی و نه گرم تو را از دهان خود قی کرده بیرون خواهم ریخت تو گمان می کنی که ثروتمند هستی و هر چه می خواهی بدون کم و در اختیار داری اما قافلی از این که بدبخت و بیچاره و بینوا و کور و اریان هستی در عهد قدیم ایلیا بر بالای کوه کرمل وقتی قوم خدا را به چالش می کشید ساعات تابناکی داشت وقتی همه جمع شدند ایلیا خطاب به ایشان گفت تا که می هم خدا رو بپرستید و هم بوتها رو اگر خداوند خداست او را اطاعت نمایید و اگر بعل خداست او را پیدوی کنید پس عیسی وقتی این رفتارهای مهم در مورد زندگی رو به ما میده به ما میگه بخواهید که به بالای کوه بیایید و پر بشید و وقتی پر شدید و از کوه پایین آمدید پر از محبت بیقید و شرط خدا خواهید بود و اگر اون واقعا محبت بیقید و شرط خداست که از زندگی شما بیرون میاد، اون موقع وقتی محبت کنید قلبتون پاک خواهد شد. شما با انگیزه دروغین محبت نخواهید کرد. با انگیزه های شخصی محبت نخواهید کرد که نفعی از اون آیدتون بشه. فقط محبت خواهید کرد. اون از قلب شما جاری خواهد شد. از زندگی شما جاری خواهد شد برای اینکه مطمئن بشید اون چیزی واقعی هست، اگر تصمیم دارید که یکی از رحم کنندگان بشوید، یکی از کسانی که با محبت بیقید و شرط خدا محبت می‌کنند، بهتره که قلبتون رو سند بزنید و از هر چیزی که نباید اونجا باشه پاک کنید. بهتره که هر روز دعا کنید، خدایا اگر چیزی به جز محبت تو برای مردم این دنیا در دلم هست، اون را از قلب من پاک کن، اون را از قلبم بیرون بیار. عیسیا چیزهای زیادی در مورد قلب گفته در باب هفتم مرقس تعلیمی هست که من خیلی دوست دارم. اونجا که رهبران مذهبی رو به خاطر چیزهای توبیخ میکنه. اولا اونها پارسایی داشتن که ظاهری بود که چند جلسه قبل در موردش صحبت کردیم. اونها از عیسی ایراد میگرفتند که چرا قبل از غذا آداب شستشو را انجام نمیده. اونها آستین هاشون رو بالا میزدن درست مثل کسایی که آماده جراحی کردن هستن. البته اون آداب شستشو در کتاب مقدس نبود. قوانینی بود که اونها به کتاب مقدس اضافه کرده بودند. رهبران مذهبی احساس میکردند این قوانین تفسیر و کاربردی برای کتاب مقدس هستند. اما این چیزها واقعا در کتاب مقدس نبودند و عیسی هیچ کدوم از این کارها رو قبل از قضا انجام نمیداد وقتی اونها به این دلیل از عیسی انتقاد می می‌کردند، عیسی اونها رو توبیخ کرد و گفت: شما علاقمند ظاهر هستید. شما بیشتر علاقمند انسان بیرونی هستید آیا واقعا نمیدونید که مهمترین بخش انسان انسان درونی هست؟ او به ایشان فرمود آیا شما هم مثل دیگران کودن هستید آیا نمیدانید هر چیزی که از خارج وارد وجود انسان شود نمیتواند او را نجس سازد چون به قلب او وارد نمیشود بلکه داخل میدهش می شود و از آنجا به مزبله می ریزد به این ترتیب عیسی تمام غذاها را پاک اعلام کرد عیسی سخن خود ادامه داده گفت آنچه که آدمی را نجس میسازد چیزی است که از وجود او صادر میشود چون افکار بد از دل بیرون میآید یعنی فسق دزدی آدم کشی، زنا طمع خباست فریب هرزگی حسادت تهمت خودبینی و حماقت اینها همه از درون بیرون میآیند اینها انسان را نجس میسازند چیزی که عیسی اینجا میگفت و چیزی بود که غالبا می گفت چنین چیزی بود اون چیزی که در درون هست اهمیت داره این جایی هست که شما به یک معجزه نیاز دارید این جایی هست که باید تغییر کنید پولس میگه اگر کسی در مسیح هست او خلقتی تازه است. او در کجا خلقتی تازه هست؟ در درون داوود دوباره در مزمور یک فهمید که وقتی به طور قمنگیزی گناه کرد در اولین بخش از مزمور 51 او دعا میکنه خدایا حقیقت وجودم رو به من نشون بده حقیقت اون انسان مخفی اون انسان درونی رو به من نشون بده چی درون من هست که این امکان رو به وجود آورد که چنین گناهان قمنگیزی بکنم گناهانی مثل زناب و قتل و بیش از یک سال دروغ گفتن و مخفی کردن اونها خدایا چطور این اتفاق برای من افتاد و بعد او جواب خدا رو میگیره او میگه من علیه تو ای خداوند بلی تنها علیه تو گناه کردم و آنچه را که در نظر تو بده است انجام دادم اینک تو حق داری که مرا داوری نموده محکوم سازی من از روزی که به دنیا آمدم گناه بودم از همان لحظه ای که نطفه هم در رحم مادر بسته شد به گناه آلوده بودم و این مشکل من بوده و وقتی میبینه که مشکلش درونی هست اون دعای بزرگ رو در آیه ده مزمور 51 و یک می خدا دل پاک در من بیافرین و باطنم را با روح راستی تازه گردان چه دعای زیبایی برای همه ماست که هر روزه باید دعا کنید ببینید از قلب هست که مخرجهای حیات جاری میشه چیزی که در قلب انسان هست تعیین میکنه کنه که چه چیزی از او بیرون خواهد اومد عیسی گفته زبان از زیادتی دل صحبت می کند. شما از صحبتهای مردم میتونید بفهمید که در دل اونها چی میگذره. اگر اونها همیشه در مورد خودشون صحبت میکنن، پس چیزی که در قلبشون هست، خودشون هستن. اونها خودخواه هستند اعمال نشون میدن که چی درون قلب انسان هست. هرچه بیشتر کانال و مجرایی برای این محبت بی و شرط خدا باشید، ظرفیت بیشتری برای انتقال دادن محبت خدا به دیگران خواهید شد. اما وقتی شما مجرای رحم کننده محبت بی قید و شرط خدا هستید مهم این هست که با دلی پاک محبت کنید این رحم کننده هایی که قلب های سوند زده شده و دل پاک از شرارت دارند کسانی هستند که خدا را خواهند دید از این نظر خواهند دید که خدا کار میکنه اونها خواهند دید که خدا توسط اونها کار میکنه اونها خواهند دید که محبت بی قید و شرط خدا توسط اونها به زندگی مردم جاری میشه. اونها خواهند دید که محبت بی قید و شرط زندگی های مردم رو لمس میکنه و اونها رو تغییر میده. دیگران رو به سوی مسیح میاره. با این نتیجه که اونها هم مخلوقاتی تازه بشن. اونها خواهند دید که چیزهای کهنه در اند و همه چیز تازه میشه و خواهند دید که خدا با دادن قلبی تازه به اون مردم کار میکنه. و بعد اونها هم تبدیل به کانال های رحمت و محبت خدا با قلبهایی پاک میشوند خوشا به حال پاک دلان زیرا آنها خدا را خواهند دید عزیزان شما رو نمیدونم اما خود من از این درسی که امروز معلممون برای ما از تعالیم ایسا در موعظه سر کوه به ما تعلیم داد به چالش کشیده شدم این درس به من کمک میکنه مفهوم واقعی شاگرد مسیح بودن رو درک کنم میگن با تمرین کردن انسان ورزیده‌تر میشه پس به تصمیم بگیریم چیزی رو که از کلام خدا یاد میگیریم در زندگی روزمره‌مون تمرین کنیم حالا تا برنامه‌ای دوباره امیدوارم خدای واحد حقیقی شما رو تشویق کنه و آرامش روح جسارتش رو در پیروی از عیسی مسیح به شما عطا کنه تا هر چیزی که می‌گید و هر کاری که می‌کنید برای جلال پدر آسمانیمون باشه. آمین.